ساعت شش بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند صبحتان بخیر. امروز 4 شنبه 19 اسفند 1394 هجری شمسی 29 جمادیال الاول 1437 هجری قمری و 9 همه مارس 2016 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای وامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری بر خبر هاست. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم قرس یک اصل نهال در هفته منابع طبیعی با تاکید بر ضرورت قرض دانستن گیاهان و درختان که مایه برکت زندگی بشر هستند گفتند همه مردم و مسئولان باید در حفظ فضای سبز به ویژه فضای سبز جنگل ها و مراتع به عنوان یک وظیفه کوشا باشند در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور طرح آمایش آموزش عالی در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی شد و شاکله اصلی طرح به تصویب رسید. سخنگوی دولت از همسانسازی حقوق کارکنان دولت و رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی در سال آینده خبر داد. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تره دو تمدید برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال به تصویب رسید. مرحله نهایی رزمایش موشکی اقتدار ورایت سپاه پاسداران در نقاط مختلف کشور با شلیک موشکهای بالستیک برگزار شد. پیش فروشه حجوری بلیط‌های نوروزی اتوبوس آغاز شد. فروش بلیط های جدید های نوروزی شرکت بین‌المللی رجا هم آغاز شد. توزیع کارت ورود به جلسه دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی آغاز شد. اساسه آیت الله خامنهای رهبر معظم اقرای اسلامی در حکمی دبیر و اعضای شورای عالی و مدیر حوزه علمیه خراسان را منصوب کردند. رئیس مجلس خبرگان رهبری در آغاز اجلاس خبرگان رهبری ضمن تبریک به منتخبان دوره آینده خبرگان بر قانون‌گرایی و پذیرش رأی مردم تاکید کرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت امواج مختلف کشور به صورت مداوم به کمک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان انرژی اتمی پایش می شود و جای هیچ نگرانی نیست. مراسم راهاندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران امروز برگزار می شود. نخستین بار در شرق کشور رادیو دارو از طریق دستگاه سیکلوترون در بیمارستان رضوی مشهد آغاز شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان محیط زیست یاداشت تفاهم برای توسعه همکاری امضا کردند. معاون پاشیبانی و امور استانهای بنیاد مسکن گفت برای روکش آسفالت های روستایی 480 هزار تن غیر رایگان در روستاها توزیع میشود. وزیر امور خارجه که در ادامه سفر دوره خود به کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه از سنگاپور وارد برونه ای شد در دیدار دبیر کل وزارت خارجه هلند با معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه کشورمان راه‌های توسعه مناسبات دو کشور بررسی شد یگان موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن بار دیگر تجمع موظوران سعودی در استان الجوف را هدف حمله موشکی قرار دادند نیروهای مردمی سوریه بر دو روستای قرب و واقع در حسکه سوریه مسلط شدند یک شعبان فلسطینی در عملیات شهادت با سلاح سرد یک سهیونیست در تلاویو را به حرکت رساند و نه نفر دیگر از آنها را زخمی کرد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آفا با اشاره به کاهش بارندگی ها در دو ماه گذشته گفت: "همچنین میزان بارش های 13 استان در مقایسه با دوره بلندمدت است منفی شده است." و سازمان هواشناسی برای مناطقی از جنوب و نیمه شرقی کشور رگبار رعد و وزش باد پیش بینی کرد. در واست می‌کنم بخش بعدی خبرهای بامدادی رادیو ایران در ساعت 7 صبح باشید. صباح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم نفس صوب تجام شفاق نور خداني شفاف خدا ای ما با ای به نام خدا و با سلام بر شما شجمدگانی گرامی در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 11 تا هجدهم سوره مبارکه انعام گوش می‌کنیم و سفست به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام گوش میکنیم. اعوی اللہی من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ موسیقی قل اغیر الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلب ولا تكونن من المشركين ونسيت رديع ذاب يوم من عظيم من يصرف عنه يومئذ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ کب خیر على كل شيء قدير و القاهر فوق عباده وهو انكيمو الخبير صدق الله بسم الله الرحمن الرحیم در برنامه قبل سوره مبارکه انعام را تا آیه دهم ده این سوره ترجمه کردیم در آیاتی که امروز طلاوتان را شنیدید پس از دعوت مردم به مسافرت در سرزمینها و عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان، قرآن خطاب به پیامبر مطالبی را بیان می‌فرماید که آن حضرت به صورت احتجاج و استدلال علیه عقاید مشتکان با آنان در میان گذارد آیه یازده در این باره بگو در زمین بگردید و بنگرید سرانجام تکسیب کنندگان چگونه بوده است. بگو آنچه در آسمانها و زمین است از کیست؟ ای رسول ما بگو از آن خداونده است که بخشندگی را برخیش مقرر داشته است. در روز قیامت که هیچ شکی در آن نیست شما را گرده هم می آبرد. کسانی که به خود خسارت زده اند آنان ایمان نمی آورند. هرچه در شب و روز آرام گرفته از اوست و او شنوا و داناست. رحمت عبارت است از نعمت دادن به مستحقان و رسانیدن به کمال سعادت. از این رو خداوند بر خود واجب کرده که نعمت خود را بر مردم با گرداوری آنان در روز قیامت تمام کرده و پاداشی را که هرکس مستحق و لایق آن است با آنها عطا فرماید که مسلما بهره مؤمنان راستگاری و حاصل کار ستمگران جز زیان نخواهد بود و وجود قیامت از این روی ضروری است که هر کدام از این دو گروه به وسیله اعمال خود مستحق نتیجه مشابه با کارهایشان باشند و چون خداوند هر مستحقی را به که رحمتش به کمال لای میرساند پس باید قیامتی در کار باشد تا هر کس ثمره کار خود را ببیند و چون خداوند مالک آسمان ها و زمین است و توان تصرف به هر شکلی را در آن دارد از نظر امکان وقوع قیامت نیز محظوری در پیش نخواهد بود در آیه 13 هم برای رفع این توهم که عدهای گمان نبرند خداوند از اعمال و گفتار آنان ممکن است آگاهی نداشته باشد میفرماید که تمامی آنچه که در ظرف شب و روز قرار می گیرد مملوک خداوند است و هر مالکی نسبت به اعمال مملوک خود کمال اطلاع را داشته و در نتیجه خداوند به اعمال و کردار مردمان بینا و شنواست حس به طور خلاصه برهان ارائه شده در این آیات برای اثبات معاد عبارت از این بود که خداوند به مختزاه رحمتش همگان را مطابق استحقاقی که به دست اند جزا می‌دهد این جزا در روز قیامت خواهد بود و از طرفی چون قادر و صاحب تصرف در آسمانها و زمین است به خوبی بر انجام این کارها قادر است در ادامه قرآن شروع به استدلال بر وحدانیت خداوند نموده و چنین می‌فرماید ای پیامبر بگو چگونه جز خداوند خالق آسمان‌ها و زمین که به دیگران می‌خورانند و دیگران به او روزی نمی‌خورانند سرپرست و پیشوایی برگزینم بگو من معمور شدهام نخستین کسی باشم که اسلام آورده است و ای پیامبر تو از جمله مشتکان نباش. بگو اگر نافرمانی پروردگار خیش کنم از عذاب روزی بزرگ بیم دارم و هرکس کس عذاب روز قیامت از او برگردانیده شود خداوند به او رحم کرده و این کامیابی بزرگ است. یکی از انگیزه های مشرکین در پرستش چند خدا این بوده است که چون میدیدند در زندگی روزمره احتیاجات مختلفی دارند که باید برآورده شود و گمان می‌بردند که برآورده شدن هر کدام از این نیازها به دست قدرت برتری است و برای رفع هر نیازی خدایی وجود دارد از این رو برای جلب محبت و اظهار امتنان از هر کدام این خدایان شروع به پرستیدن چند خدا می‌کردند انگیزه دیگری که آنان را به شرک ترغیب می‌نمود واهمه ای بود که از حوادث مختلف طبیعی چون باد، طوفان و رعد و برق داشتند و برای دفع زرر این حوادث که به نظر آنان از خشم خدای طوفان یا خدای رعد حاصل میشد، به پرستش این خدایان و قربانی کردن در راه آنان می پرداختند قرآن کریم در آیه چهاردهم توضیح می اگر علت اگر علت مشرک شدن شما اظهار امتنان و جلب نظر از خدای تعام و روزی است، پس باید که تنها خدای یگانه را بپرستید زیرا تنها اوست که به اعتقاد خود شما همگان به او محتاجند ولی او به کسی و چیزی مانند قضا محتاج نیست پس برای بهرهوری از مواهب تنها باید او را پرستید که همگان در روزی خود به او احتیاج دارند و از طرف دیگر اگر مشتکان به خاطر ترس است که به پرستش خدایان خیالی باد و طوفان دست میزنند، باز هم باید خدای یکتا را بپرستید، زیرا اوست که در قیامت همگان را به محکمه عدل فراخوانده و کافران و مشتکان را در عذابی سخت جاودان میسازد و ترس از این چنین عذابی به مراتب از ترس حاصل از یک باد یا رعد شدید بیشتر است. آیه بعد ادامه می دهد آن کسی که دران روز دوچار عذاب نگردد تنها به خاطر رحمت الهی است و اگر حساب اعمال در میان آگد و خداوند به عدل خود رفتار نماید هیچ کس استحقاق بهشت را نخواهد داشت. در تفسیر صافی در ارتباط با این آیه چنین روایت شده است که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند قسم به کسی که جان من در دست اوست هیچکس تنها به واسطه اعمال نیکش به بهشت داخل نخواهد شد از عرض کردند آیا شما نیز به واسطه اعمالتان به بهشت راه نخواهید یافت حضرت فرمودند من نیز چنین نخواهم بود مگران که خداوند مرا با فضل و رحمتش بپوشاند و یاری نماید. این دو برهانی که در این آیات بیان شده، دو روش عمومی در اعتقاد به خداوند و وحدانیت اوست. یکی مسلک تجارت پیشگان و دیگری طریقه ترسویان. بعضی منظور از پرستش خداوند را رسیدن به نعمت یا رهایی از عذاب میدانند و نه تقرب به خداوند تبارک و تعالی. ولی اده دیگری از مردم چون انبیا و ائمه و سایر پیروان راستین این بزرگواران فارغ از بهشت و جهنم به عبادت خداوند می پردازند چون او را سزاوار پرستش یافتند. در ادامه آیات قرآن به استدلالهای خود بر وحدانیت خداوند بزرگ ادامه داده و میفرماید اگر خداوند رنجی به تو برساند هیچ کس جز او توان برطرف ساختن آن را ندارد و اگر خیلی به تو رساند، او بر همه چیز تواناست و او قاهر و بالا دست بندگان خیش است و فرزانه و بیناست. پس ازان که در آیات چهاردهم و پانزدهم بیان فرمود که روزی دهنده واقعی خداوند است، در آیه 17م می‌فرماید که نعمت‌ها و مهنت‌هایی که به واسطه آن خداوند سزاوار است منحصر در روزی دادن و عذاب قیامت نیست بلکه هر آنچه از نیکی و بدی در زندگی دنیا و برزخی انسان به او میرسد، از جانب اوست و کسی را یارای برابری با او نیست و در آیه 18 در پاسخ به این اشکال که این اموری که ذکر کردید دلیل پرستیدن خداوند است ولی دلیل آن نمی شود که از پرستش خدایان دیگری چون خدای باد و طوفان و رعد خودداری شود چنین می‌فرماید که خداوند یگانه مافوق و بالادست همه موجودات است و همگان در تحت سیطره نفوذ قدرت و اراده او هستند و از این رو هر حادثه ای و از جمله این گونه حوادث طبیعی به اراده او وابسته است و کسی در عرض او قرار ندارد تا به همراه او پرستیده شود خب عزیزان شنونده ترجمه و توضیح آیه هجدهم سوره مبارکه ی انعام پایان بخش برنامه امروز ما بود تا برنامه دیگر خدایار و نگهدارت دو دو دو دور دو دو, دو, دو میره دو سی دو دو دور دو دو میره دو سی دو رادیو ایران ایران را بشنوید ایران را بشنویم به نام خدا امروز چهارشنبه 19 اسفند سال 1394 هجری شمسی مطابق با 29 جمادی الاول سال 1437 هجری قمری و برابر با 9 مارس سال 2016 میلادی است 29 جمادی الاول سال 1264 هجری قمری 173 سال پیش ملا محمد تقی برقانی فقیه ارجمند به شهادت رسید مولا محمد تقی معروف به شهید سالس در سال 1184 قمری در برقان به دنیا آمد و در قزوین، قم و اصفهان به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و بعد در عتبات عالیات از محضر بزرگانی چون شیخ جعفر کاشف و سید مجاهد دانش‌اندوخته شهید سالس بیشتر اوقات خود را صرف ترویج احکام دین میکرد. آثار ای هم از این فقیه گرانقدر به جای مانده است. عیون الاصول در اصول فقه، مجالس المؤمنین در موائز و منهج الاجتهاد در شرح شرایل الاسلام از جمله این تعلیفات به شمار می روند. شهید سالس در اوایل ظهور فرقی بابیه بر اثر مجاهدتهای دینی علیه این فرقه به دستور بردرزادش قررت العین به شهادت رسیده. در تاریخ اسلام، علاوه بر ملا محمد تقی برقانی، قاضی نورالله شوشتری هم به شهید سالس مشهور است، نهم مارس سال 1915 میلادی یک سال پیش جان هانری فابر دانشمند علوم طبیعی و حشره معروف فرانسوی درگذشت فابر علاوه بر تدریس اوقات خود را صرف مطالعه درباره مسائل زیست شناسی و رفتار حشرات میکرد. فابر درباره زندگی حشرات مطالعات عمیقی انجام داد و همین سبب به او لقب شیفته حشرات داده بودند. فابر نقوسی دانشمندی است که درباره واکنش‌های قریزی جانوران برای حفظ بقایشان به ویژه حشرات تحقیق کرده است. فابر از طریق این تحقیقات اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست آورده فابر نتیجه تحقیقات و مطالعاتش را در قالب چهل اثر علمی ارائه کرد و از میان ده جلد از کتابهایش تحت عنوان یادداشت‌های حشره شناسی است که در مدت بیست سال آنها را نوشته است زندگی اجتماعی در دنیای حشرات از دیگر آثار فابر است ژان هانری فابر در نود دو سالگی درگذشت اسپند سال 1362 هجری شمسی، 32 سال پیش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در تهران تأسیس شد. این مرکز در زمینی به وسعت حدود 7 هکتار با زیربنای 66 هزار متر مربع از اراضی دارابات ساخته شده است. هدف از ایجاد مرکز المعارف بزرگ اسلامی پاسخگویی به نیازهای جوامع اسلامی و انتشار دانشنامه های عمومی و تخصصی و کتوب مرجع درباره وجوه و ابعاد مختلف معارف بشری به ویژه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی است این مرکز چهار کتابخانه مجزا با گنجایش بیش از سه میلیون نسخه کتاب و سالن‌های متعدد برای تحقیق و پژوهش و برگزاری سخنرانی و همایش دارد در مرکز دایرت المعارف بزرگ اسلامی از بد به تأسیز تا کنون آثار بسیار جامع و ارزشمندی منتشر شده است که دایرت المعارف بزرگ اسلامی از آن جمله است که تا کنون 21 جلدان منتشر شده است. همچنین تاریخ جامع ایران از آغاز تا پایان دوری قاجار در 20 جلد از دیگر آثار این مرکز است. مرکز دایرت المعارف بزرگ اسلامی بنای بسیار زیبایی دارد که در سال 2001 میلادی نامزد دریافت جایزی معماری آقا خان شده بود که آن هر سال در ژنو سوئیس برگزار می شود. نوزده اسفند سال 1367 هجری شمسی 27 سال پیش، دکتر عباس ریاضی کرمانی استاد معروف نجوم درگذشته ریاضی کرمانی منجم و ریاضیدان مشهور ایرانی در سال 1286 خورشیدی در کرمان متولد شد ریاضی کرمانی در پایان تحصیلات دانشگاهی برای ادامی تحصیل راهی فرانسه شد و از دانشگاه سوربون دکترای نجوم دریافت کرد. دکتر ریاضی کرمانی بعد از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران و سایر موسسات آموزش عالی مشغول تدریس شد و سرانجام به مقام استادی نائل آمد. دکتر ریاضی کرمانی در سال 1325 خورشیدی تقویم رسمی ایران را تایی و تدوین کرد. و تا سالهای آخر عمر روزشمار ایران را محاسبه میکرد. کرده. دکتر ریاضی کرمانی ضمن تدریس و تحقیقات ارزنده به تعلیف آثاری ارزشمند هم پرداخته. کتاب های حیعت و نجوم و مقدمه بر نجوم عالی از آن جملنده. دکتر عباس ریاضی کرمانی در تهران و در 81 سالگی درگذشت. نوزدهم اسفند روز بزرگداشت محمد هادی اول نقاش، مذهب و تشییرکار صبی دوازدهم قمری است. عمده آثار محمد حادی اول در گل و برگ، تذهیب و تشییر و انواع فنون طلا اندازی و حلکاری بود. محمد حادی اول نقاشی صاحب کمال به شمار می که بیشتر به تزهیب و حلکاری و آرایش های قطعات خطاتان نامدار و مرقعات گوناگون و اوراق تزئینی می پرداخته. آثاری از محمد هادی اول در آلبوم هنرهای آسیایی انستیتوی علوم لنینگراد به چاپ رسیده است. تشعیر و تزهیب عالی کناره های یکی از قطعات معروف میر اماد، و مجموعی از گل و برگ به شیمی گلکاری از آثار ارزشمند محمد هادی اول است.